دوستای خوبم به کلاسه دیگری از دانشکتیه کتاب مقدس خوش اومدین. ما افتخار داریم که شما تصمیم گرفتین که این ساعت رو به ما اختصاص بدین. امروز ما از آموز میشنویم. یک مرد آمی، کسی که انجیر چینی و شبانی میکرد. با این حال خدا تصمیم گرفت از اون به عنوان یکی از انبیای قدرتمندش استفاده کنه. چه حقیقت حیرت انگیزی، خدا مشتاقی که انسان های و معمولی رو برای انجام کارهاش به کار بگیره. بیاید به دقت به درس امروز گوش کنیم. دانشجویان عزیز به جلسه دیگری از دانشکده کتاب مقدس خوش آمدید. در این جلسه ما آموس نبی رو بررسی خواهیم کرد. او در بین انبیا کوچک مورد علاقه بسیاری از مردم هست چون آموس وقتی به نبوت فراخنده شد یک شخص معمولی بود. در حالی که اشعیا در قصرهای پادشاهان زندگی می‌کرد، آموس یک انجیرچین و یک چوپان از سرزمین کوچکی به نام تقو در دوازده مایلی جنوب اورشلیم بود. آموس نگران این واقعیت بود که انبیایی که انبیای واقعی بودند، انبیای آموزش دیده کلام خدا را در زمان او موعظه نمی‌کردند و آموس همیشه به فکر این بود که باید انجیرچینی و چوپانی رو رها کنه. و به پادشاهی شمال اسرائیل بره و کلام خدا رو موعظه کنه آموس ناراحت بود چون انبیایی که قرار بود کلام خدا رو موعظه کنند نمیکردند. بسیاری از مردم آموس رو به این ترتیب میشناسند. من دوستی دارم که وقتی ایمان آورد شروع کرد به مطالعه جدی کلام خدا وقتی که کلام خدا رو مطالعه می کرد و به معهزه ها در کلیسه های خودش گوش میکرد، متوجه شد که کسانی که در کلیسا کتاب مقدس رو میدونند به اون ایمان ندارند و کسانی که کتاب مقدس رو نمیدونند به اون ایمان دارن. او تصمیم گرفت نه تنها به کتاب مقدس ایمان داشته باشه، بلکه میخواست که اون رو خوب بدونه. پس شروع به مطالعه عمیق کتاب مقدس کرد. وقتی که مطالعه رو به پایان رسوند، اگرچه او یک تازه کار بود، خود از او دعوت کرد که معزه کنه. او سازمانی رو ترتیب داد که نامش عوام زنده بود. موزه‌ی او به طرز چشمگیری کشور رومانی رو تحت تاثیر قرار داد. آموس هم در مورد مؤسسات مذهبی زمان خودش که کلام خدا رو میدونستند اما اون رو موعظه نمی‌کردند، چنین احساسی داشت. او خواندگی خدا رو در زندگیش حس کرد. تصمیم گرفت که اگر مؤسسات مذهبی نمیخواند کلام خدا را موعظه کنند، پس خدا از او دعوت می‌کنه که کلام خدا رو موعظه کنه. اگرچه او یک نبی یا فرزند نبی, نبی نبود، آموس در یهودا در پادشاهی جنوب زندگی می کرد. با این حال، خدا از او دعوت کرد که به پادشاهی شمال اسرائیل بره و قبل از حمله آشوریان و به اسارت بردن پادشاهی شمال برای اونها موعظه کنه. اگرچه آموس در جنوب زندگی می کرد، اما او یکی از دو نبی بود که معموریت یافت در پادشاهی شمال موعظه کنه. نبی دیگری که معموریت داشت در پادشاهی شمال موعظه کنه، هوشع بود. بقیه انبیا در پادشاهی یهودا در جنوب معهزه کردن یک خبر ارزشمند تاریخی در ابتدای کتاب آموس آمده که مشخص کننده دوره زندگی آموس هست وقتی که این انبیا رو بررسی می کنیم یادتون باشه ملاحظه آیاتی که به ما می گن کدوم پادشاه در اون دور زندگی می کرده بسیار مهم هستند. گاهی به این دلیل مهمه که بدونیم این نبی کی و برای چه کسانی معهزه می کرده چون اون موقع می چیزی که این نبی می کرده و دلیل موعظه رو بهتر درک کنید با الهام روح القدس بسیاری از این کتاب ها در باب های نخوس به ما جزئیات تاریخی رو میدن که زمان اون نبی رو برای ما مشخص میکنن به ما میگن که کی موعظه میکرده کجا موعظه میکرده و برای چه کسانی موعظه میکرده این اطلاعات به ما کمک میکنند که بفهمیم چرا او این پیام رو داده به هر حال ما وقتی به این اطلاعات تاریخی برسیم اونها رو بررسی خواهیم کرد مهمترین چیز در مورد این انبیا که باید به یاد داشته باشیم، کاربرد عملی پیام های آنهاست. همیشه یادتون باشه، چیزی که از این انبیای کوچک می‌خواید برداشت کنید، کاربرد عملی شخصی این پیام ها برای زندگی خودتون هست. یادتون باشه که هر کدوم از این کتاب‌های کتاب مقدس توسط شورای کتاب مقدس یا سنهدرین در اون قرار داده شده چون مردان مقدس خدا ایمان داشتن که این کتاب ها پیامی برای من و شما داره هیچ کتابی در شورای کتاب مقدس وجود نداره که چیزی برای گفتن برای من و شما نداشته باشه من به شما بافت کلی جزئیات تاریخی و بعضی چیزهایی رو خواهم داد که به شما کمک میکنه درک کنید پیام چی هست همیشه دنبال اون پیام بگردید همیشه از خدا بپرسید خدایا توسط این نبی چه پیغامی برای من داری وقتی که بررسی کتاب Amos رو شروع میکنیم به اون اطلاعات ارزشمند تاریخی که دوره آموز رو برای ما مشخص میکنه نگاه میکنیم. اون موقع میفهمیم که او نبی دیگری بوده که در زمان پادشاه ازلیا خدمت میکرده. ازلیا پادشاهیه که در جنوب حکومت میکرد. او کسی بود که بسیاری از انبیا با او معاشرت میکردند. اشعیا خدمتش رو زمانی شروع کرد که ازلیا مرد. ازلیا 42 سال حکومت کرد. بنابراین انبیایی که در دوره ازلیا خدمت میکردند به این معنی نیست که با همدیگر خدمت میکرد آموز عملا سالها پیش از اشعیا در اوایل حکومت اوضیا خدمت میکرد کرد. پادشاهان دیگری ایمانند یوتان بودند که نائب و سلط بودند اوزیا در آخرین سال حکومتش به جزان مبتلا شده بود آهاز پادشاه شریر و هزقیه پادشاه خوب جز پادشاهانی بودند که در زمان خدمت آموز حکومت می کردند گفته شده که آموز دو سال قبل از زمین لرزه نبی شد اون زمین لرزه به حدی شدید بود که 200 سال بعد زکریا به اون اشاره کرد. تمامی پادشاهانی که در زمان زمین لرزه به اونها اشاره شده، جزئیاتی به محققین میدن. بنابراین ما جزئیات ارزشمند تاریخی در مورد آموس نبی داریم. وقتی بفهمید آموس کی زندگی میکرد، میفهمید که آموس شاید حوشع رو میشناخته. ما یقینا میدونیم که او معاصر با هوشه بوده. آموس همینطور میتونسته انبیایی مثل یونس و الیشه رو بشناسه. تمامی این تاریخ‌ها به ما نشون میدن که در پایان خدمت آموس، اشعیا و میکا پسران کوچکی بودن که شاید های آموز رو شنیده بودند. داشتن دیدگاه تاریخی از آموز و مقایسه اون با زمینه‌های تاریخی دیگران بیا میتونه بسیار جالب باشه. وقتی آیات نخست کتاب آموز به ما میگه که آموز در دوره حکومت اوزیا خدمت می‌کرد، مهمه که بفهمیم زمان اوزیا به لحاظ نظامی زمانی بود که اسرائیل بسیار قدرتمند و در امنیت کامل بود. پادشاهی در خلال حکومت اوذیا در اوج خودش بود. اوزیا پادشاه خوبی بود و به خوبی حکومت می قوم اسرائیل از پیروزی های نظامی بزرگ لذت می و بر این باور بودند که هیچ دشمنی وجود نداره که تهدیدی برای آنها باشه. زمان بسیار موفقیت بود نه تنها به لحاظ نظامی بلکه به لحاظ مادی و سیاسی، آموز به فراوانی به این وضعیت اشاره میکنه آموس به خانه های اونها به خانه های زمستانی اونها به اساسی اشرافی و به لباس های گران قیمت اونها اشاره میکنه بعضی ها برای نققا که ایامی که آموز در پادشاهی شمال خدمت میکرد، از بسیاری لحاظ شبیه دوره ما بود قوم خدا در بسیاری جاها همین الان در فراوانی هستند و به لحاظ مادی برکت یافتند پیغام آموز شاید کاربرد خاصی برای ایماندارانی مثل ما که در این دور زندگی میکنیم داشته باشه پنجاه سال بعد از خدمت آموز آشوری ها آمدند و بر پادشاهی شمال غلبه کردند اگرچه مردم پادشاهی شمال در زمان موعظه آموز بسیار بسیار کامیاب بودند اما روزهای تاریکشان چندان دور نبود به لحاظ دیدگاه تاریخی ما میدونیم چیزی که آموز می میگفت واقعیت داشت اگرچه وقتی مردم پادشاهی شمال شنیدند که آموس موعظه میکنه شاید به نظرشون مسخره رسیده باشه آموس واعظ بزرگی بود تمامی این انبیا واعظین بزرگی بودند با مطالعه پیامهای اونها میبینیم که اونها سخنوران فسیحی بودند با این حال آموس اگرچه به شیوایی اما مانند یک مرد آمی صحبت میکرد ما این رو در هوشع دیدیم و در مورد آموس هم میبینیم چون آموس فقط یک چوپان و انجیرچین بود آموز خیلی رک و بیپرده پرده بود. در باپای یک و دو نبوتش، آموس کاری بسیار با نزاکت و سیاستمدارانه انجام میده. او معزش رو با چیزی شروع میکنه که مشتاقش، او معزش رو با چیزی شروع میکنه که اسرائیل مشتاق شنیدنش بود. آموز اول خبرهای خوب رو میده و بعد خبرهای بد رو. شاید شما داستان خبرهای خوب و خبرهای بد رو در مورد کشتی‌های رومی شنیدی. در زمان امپراتوری روم، اونها کشتی‌هایی داشتند که برده ها اونها رو به حرکت می آوردن. یک نفر با گرزی بزرگ بر روی صفحه ای فلزی می زد و برده ها با آهنگ اون پارو می زدن. یک روز صبح فرمانده کشتی با پاروزنا صحبت کرد و گفت من یه سری خبر خوب دارم و یه سری خبر بد. خبر خوب اینه که همه شما امروز جیره اضافی آب و غذا دریافت خواهید کرد. خبر بعد اینه که وقتی که خوردید ما سرعتمون رو زیاد خواهیم کرد. من مطمئنم که، جو که خبر خوب و خبر بد رو شنیدید در سرتا سر, تا سر آموس می می‌بینید که او همیشه خبرهای خوب را اول میده و بعد از اون سراغ خبرهای بد میره آموس تقریبا شنوندگانش رو برای خبر بد آماده می‌کنه او با گفتن خبرهای خوب توجه اونها رو جلب می‌کنه و بعد خبر بد رو به اونها میده آموس خبرهای خوب رو در دو اول کتاب خودش میده و میگه دشمنان قوم یهودا توسط خدا داوری خواهند شد آموس این قومها رو یکی یکی نام میبره. او مأزم می‌کنه و میگه داوری خدا بر دشمنان اونها خواهد اومد. مردم وقتی این خبرها رو میشنوند بسیار از شنیدن این پیغام خوشحال میشن. اونها دوست دارن که به این پیغام داوری خدا که بر دشمنانشون خواهد اومد گوش کنن. به هر حال آموز با پیغام داوری خدا بر دشمنان توجه اونها رو جلب میکنه و بعد این طور میگه خداوند این طور میگوید به سبب سه و چهار تقصیر یهودا عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که شریعت خداوند را ترک نموده فرایز او را نگاه نداشتند و دروغ ایشان که پدرانشان آنها را پیروی نمودند ایشان را گمراه کرد پس آتش بر یهودا خواهم فرستاد تا قصرهای اورشلیم را بسوزاند این بخش از پیام آموز خطاب به پادشاهی جنوب بود اما وقتی او به معزش ادامه میده برای پادشاهی شمال اسرائیل موعظه میکنه خداوند چنین میگوید به سبب سه سب و چهار تقصیر اسرائیل عقوبت را نخواهم برگردانید زیرا که مرد عادل را به نقره و مسکین را به زوج نعلین فروختند و به قبار زمین که بر سر مسکینان است هرس دارند و راه حلیمان را منحرف میسازند و پسر و پدر به یک دختر در آمده اسم قدوس مرا بی حرمت میکنند و بر رختی که گرو می گیرند نزد هر مذبح می و شراب جریم شدگان را در خانه خدای خود می نوشند. و حالان که من اموریان را که قامت ایشان مانند قد سرو آزاد بود و ایشان مثل بلود تنومند بودند پیش روی ایشان حلاک ساختم و میوه ایشان را از بالا و ریشه های ایشان را از پایین تلف نمودم. من شما را از زمین مصر برآورده چهل سال در بیابان گردش دادم تا زمین اموریان را به تصرف آورید و بعضی از پسران شما را انبیا و بعضی از جوانان شما را نظیره قرار دادم خداوند میگوید ای بنی اسرائیل آیا این چنین نیست اما شما نذیره ها را شراب نوشانیدید و انبیا را نهی نموده گفتید که نبوت مکنید اینک من شما را تنگ خواهم گذارد چنانکه که ارابه که از بافه ها پر باشد تنگ گذارده می شود و مفر برای تندرو فوت خواهد شد و تنومند به توانایی خیش غالب نخواهد آمد و جبار جان خود را نخواهد رهانی و تیرانداز نخواهد ایستاد و تیز پا خود را نخواهد رهانی و اسب سوار جان خود را خلاصی نخواهد داد و خداوند میگوید که شجاعترین جباران در آن روز اوریان خواهند گریخت وقتی آموس این پیغام را برای پادشاهی شمال میکنه اونها واقعا پیام را مسخره میکنند چون او مغلوب شدن اونها به دست آشوریان رو پیشگویی میکرد. آموز به مهارتهای خاص اشاره میکنه به های نظامی که ارتش عزیا به اونها معروف بود. مثل سوارکاری و تیراندازی. اون موقع مردم این نبوتها رو مسخره کردند اما پنجاه سال بعد تمام این نبوتها تحقق یافت. مردم پادشاهی شمال در تمامی اون عرصه های نظامی شکست خوردند. دلیلی که هنوز این انبیا توسط نوشته هایشان با ما همراه هستند و دلیلی که اونها قابل احترام هستند اینه که نبوتهای اونها همه تحقق یافته و به انجام رسیده این میتونه ما رو قانع کنه که نوشت‌های نبوتی عهد قدیم معجزه‌های خارق العاده‌ای بودند دلیل دیگرش اینه که این نوشت‌ها هنوز بسیار مهیجند و باعث برانگیختن و به چالش کشیدن من و شما هستند انبیا هم مانند خداوند عیسی مسیح عواقب رو به عنوان نشانه هایی به کار بردند انبیا به قوم خدا حقایق روحانی رو یادآوری کردم که از کاهنی آموخته بودند به عنوان یک شبان با چندین سال تجربه فهمیدم که ما به عنوان قوم خدا بیش از آموزش به این نیاز داریم که گاه حقایق خدا رو به یاد بیاریم اینکه با آموخته هایمان چه می کنیم مهمه نه این که هر روزه و هر روزه بیشتر یاد بگیریم من شما را به چالشی وا که از این انبیا الگو گرفتم و اون چالشیه آیا حقایق روحانی که میدونید به کار می گیرید؟ یا اینکه در دام استراتژی شیطان میافتید که دوست داره ما رو قانع کنه که دانش پرهیزگاریه برادران و خواهران عزیز دانش حتی دانش روحانی دانش کتاب مقدسی مزیت و تقوا نیست کاربرد دانش روحانی تقوا هست انبیا این رو میدونستند و مکررا به قوم خدا یاداوری میکردند که به کار گرفتن آموخته های ما هست که با فیض خدا ما رو پرهیزگار می کنه. از خدا بخواهید که به شما کمک کنه از آنچه که می دونید اطاعت کنید و طبق اون زندگی کنید. خیلی جالبه که ببینیم آموز چطور داوری خدا را بر یهودا و اسرائیل معهزه می کنه. آموز هیچ فرقی بین یهودا و اسرائیل و دیگر اقوام خدا نمیذاره. اگرچه بسیاری از این انبیا بین اونها شدند آموس قوم خدا رو در داوری خدا با دیگر اقوام یک جا جمع میکنه به هر حال یک تأکیدی در معزه های آموس هست آموس وقتی داوری خدا رو بر یهودا و اسرائیل و مخصوصا اسرائیل معزه میکنه میگه که داوری خدا بر قوم خودش بسیار سختتر از دیگر اقوام خواهد بود چون قوم یهودا و اسرائیل از مزایای روحانی برخوردار بودن این نکته بسیار مهمی در معزه آموس هست چون قوم خدا به لحاظ روحانی مزیت داشتن، خوب آموزش دیده بودند و تمامی برکات روحانی را رو داشتن و به لحاظ روحانی و مادی در فراوانی بودند، آموز میگه حاسخ گوی اونها و مسئولیت اونها بسیار بزرگتر خواهد بود. بنا به گفته آموز، اندازه و درجه مسئولیت شما ارتباط مستقیمی با مزایای روحانی شما با چیزی که میدونید و کاری که میکنید داره. چی کار میکنید؟ اصلی هست که کتاب مقدس بر اون تاکید کرده مردم گاهی به سن و سال در پاسخگویی اشاره میکنند کتاب مقدس زیاد در مورد ارتباط سن و پاسخگویی صحبت نمیکنه بعضیا فکر میکنند که سن پاسخگویی دوازده سالگی هست. چون عیسی وقتی دوازده ساله بود به معبد رفت سن پاسخگویی که 8 بار در کتاب مقدس به اون اشاره شده بالای 20 سال هست. به هر حال در کتاب مقدس عامل مهم پاسخگویی سن نیست عامل پاسخگویی در کتاب مقدس آگاهیه چقدر از حقیقت خدا اطلاع دارید؟ چه امتیازات روحانی دارید؟ از چه مزایای روحانی بهره مندید؟ بنا گفته کتاب مقدس این چیزیه که باید روزی در مقابلش پاسخگو باشید. مهمترین پیغامی که آموس میخواد به قوم اسرائیل بده اینه که داوری خدا میاد. البته این پیغام بسیاری از انبیا هم هست. پیغامهای اونها در بخشهای مختلفی همین هست. همه اونها بر این تاکید کردند که داوری خواهد آمد. اونا در معزه هاشون میگفتند اگر توبه کنید شاید داوری خدا از شما دور بشه. وقتی که انبیا بازگشت و احیار موعظه می کردن، این مهمه که بدونید آیا اونها برای یهودا موعظه می کردن یا اسرائیل. اگر اونها احیا شدن توسط خداوند رو برای قوم یهودا موعظه می کردند اونها دو منظور داشتند. اول اینکه بعد از هفتاد سال شما از اسارت بابل برخواهید گشت. بعد اونا بلافاصله به موضوع بازگشت جغرافیایی اسرائیل به سرزمینشون اشاره میکردند که همین الان در حال انجام شدن هست اونها بازگشت روحانی اسرائیل به سوی خدای خودشون رو هم موعظه کردند که هنوز به انجام نرسیده وقتی انبیای مانند حوشه و آموز استقرار مجدد پادشاهی شمال رو موعظه میکنند شما میدونید که اونها از بازگشت از اصارت آشوری ها صحبت نمیکنند اسارت آشور پایانی نداشت. اونها این رو کاملا تصریح کردند. اونها در موعظه هاشون گفتند شما باز نخواهید گشت. کسی شما رو نجات نخواهد داد. انبیا میدونستند اسارت آشور بازگشتی نداره. با این حال انبیا از احیای مجدد صحبت می کنند. برای اینکه احیای مجدد را برای پادشاهان شمال موعظه کنند اونها باید به زمانهای آخر میرفتند و احیای مجدد رو موعظه میکردند که الان در حال وقوه است. اونها آوارگی رو موعظه میکردند. ما در طول عمر خود دیده ایم که یهودیان در سراسر دنیا پراکنده بودند به هر حال آموس و Hosea یک بازگشت جغرافیایی از اون آوارگی رو موعظه کردند مهیج‌ترین چیزی که امروزه در خاورمیانه اتفاق میافته و ما تمام اون وقایع رو میبینیم بازگشت جغرافیایی هست. همونطور که هزقیار نبوت کرد قوم اسرائیل یک پرچم داره شما میتونید برید و ببینید که قوم اسرائیل به لحاظ جغرافیایی به سرزمین خودشون بازگشتند و به عنوان یک ملت از بنا شدن خدا توسط آموس نبی به اسرائیل پیغامی میده آموس وقتی این موعظه رو میکنه نمایی از یک نبی خوب رو نشون میده آیا شیر در جنگل قررش میکند هینی که شکار نداشته باشد؟ آیا شیر ژیان آواز خود را از بیشهش میدهد هینی که چیزی نگرفته باشد؟ آموس میگه موعظه من اینه که شیر خدا غرش میکنه نبوت من اینه که خدا قدرش میکنه و شما میدونید که وقتی شیری میقره به دنبال اون حمله ای خواهد بود استعاره زیبای سخنان او اینه که مععزه او قرش شیر هست و اصارت آشور نماد همان شیر هست در بابهای نخست کتابش آموز برای قوم خدا موعظه می کنه قومی که خدا با عناوین مختلف سعی کرد توجه اونها رو جلب کنه و اصارت آشوری ها رو دفع کنه خدا برای اونها گرسنگی فرستاد مانع باریدن باران شد. خدا برای اونها تونباد و آفت فرستاد، برای اونها تا اون فرستاد، مردان جوانشون در جنگها ها کشته شدند، اسبهاشون در جنگها از بین رفتند، شهرهاشون ویران شد، اما اونها به طرز معجز آسایی حفظ شدند. با این حال به سوی خدا باز نگشتند. پس آموس موعظه میکنه و میگه که داوری خدا خواهد آمد. آموس داوری خدا رو با رویا پیشگویی میکنه. رویاهای او قلب پیام او هستند. اولین رویا در باب هفت و هشت کتابش رویای ملخها هست آموس این ملخای وحشتناک رو میبینه که میان و تمام اونها رو نابود میکنن آموس هم مثل موسی برای قوم اسرائیل شفاعت میکنه آموس نزد خدا ناله میکنه خدایا بلا رو برای اونها نفرست اسرائیل خیلی کوچی که اونها رو نابود نکن بعد خدا میگه بسیار خوب این کار نمیکنم بعد آموس رویای آتش بزرگی رو میبینه، آتشی که اسرائیل رو میسوزونه و باز هم آموس نزد خدا ناله میکنه ای خداوند یهوه، لطفا اونها رو عفو کن چون اونها خیلی کوچیکند و خدا میگه بسیار خوب، این کار رو نخواهم کرد. و بعد رویای سوم رویای شاغول هست. حالا اوزا جدیتر میشه. آموس رویای یک شاغول روی دیوار رو میبینه. شاغول وسیله یه که برای نشان دادن راستی دیوار استفاده میشه کلامی که از طرف خداوند میاد اینه ای آموس چه می بینی؟ آموس جواب میده یک شاغول و خدا میگه من قوم خودم رو با شاغول امتحان خواهم کرد من از تنبیه اونها صرف نظر نخواهم کرد خدا راستی اونها رو اندازه گرفت و فهمید که اونها راست نیستن پس خدا میگه آموس اونها رو تنبیه خواهم کرد دیگه نمیخوام برای اونها شفاعت کنی بعد آموس سبدی پر از میوه های رسیده میبینه و کلام خدا اینطور میگه آموس چه میبینی؟ این مهمه بفهمیم که انبیا آینده رو میدیدند آموس جواب میده سبدی پر از میوه های رسیده و خدا گفت این سبد نشون میده که وقت تنبیه قوم من اسرائیل رسیده تنبیه اونها رو دوباره به تعویق نخواهم انداخت بعد حیرتنگیزترین رویاه آموس رو میبینیم که خداوند بر روی مذبهی ایستاده، او میگه خداوند را دیدم که نزد مذبح ایستاده بود و گفت تاجهای ستونها را بزن تا آستانهها بلرزد و آنها را بر سر همه مردم بیانداز و باقی ایشان را به شمشیر خواهم کشت و فراری از ایشان نخواهد گریخت و باقی ای از ایشان نخواهد رست اگر به هاوی فروروند دست من ایشان را از آنجا خواهد گرفت و اگر به آسمان سعود نمایند ایشان را از آنجا روخا آورد و اگر به قله کرمل پنهان شوند ایشان را تفتیش کرده از آنجا خواهم گرفت قطعا هیچ گریزی از داوری خدا که میآید نخواهد بود کلام خدا میگه خداوند یهوه سبایوت زمین را لمس میکند و آن گداخته میگردد و همه ساکنانش ماتم میگیرند منظور از آخرین رویاک که خداوند بر روی مذبح ایستاده این هست که تنبیه و توبیه خداوند میآید و قوم اسرائیل یا پادشاهی شمال نمیتونه هیچ کاری در این مورد انجام بده. این اساس پیغام آموس است این پیغام خبر خوشایندی نبود. پنجاه سال بعد از اینکه آموز معزه کرد این واقعه اتفاق افتاد. اگرچه مردم پادشاهی شمال وقتی آموز معزه می کرد نبوت او را مسخره کردن. اما نبوت او عملا به انجام رسید. وقتی آموس به پادشاهی شمال رفت و پیامش را معزه کرد ما میخونیم که انبیاء دروغین گفتند ای نبی از اینجا بیرون برو به سرزمین یهودا برو و اونجا موعظه کن با رویاهای خودت اینجا در پایتخت جایی که پادشاهان برای خودشون معبد دارن مزاحم ما نشو آموس جواب میده من نه نبی هستم و نه پسر نبی بلکه رمبان بودم و انجیرهای برری را میچیدم. و خداوند مرا از عقب گوسفندان گرفت و مرا گفت برو و بر قوم من اسرائیل نبوت نما پس حال کلام خداوند را بشنو تو میگویی به ضد اسرائیل نبوت مکن و به ضد خاندان اسحاق تکلم من ما لحاظا خداوند چنین میگوید زن تو در شهر مرتکب زنا خواهد شد و پسران و دخترانت به شمشیر خواهند افتاد و زمینت به ریسمان تقسیم خواهد شد و تو در زمین نجس خواهی مرد و اسرائیل از زمین خود البته به اسیری خواهد رفت ببینید آموز هم همون کاری رو کرد که ارمیا وقتی که یکی از انبیای دروغین آمد و با او مخالفت کرد انجام داد ارمیا گفت تو در کمتر از یک سال خواهی مرد و دو ماه بعد اون مرد مرد به این دلیل مردم از واعزین می میترسیدند وقتی من به مردم میگم که واعظ هستم وقتی میفهمند کسی واعظه تقریبا یک سکوتی برقرار میشه سالها پیش کلاسی در یک دوره تابستانی گرفتم که توسط تعدادی از معلمین سرپرستی میشد. در خلال یکی از زنگ تفریح ها، خانمی با چوب سیگار بلندی سیگار میکشید. او از من پرسید که برای امرار معاش چیکار میکنم. و وقتی به او گفتم یک کشیش هستم، سیگارش را خاموش کرد و از چوب سیگار در آورد. او خیلی تعجب کرده بود که من یک کشیش هستم. این تا حدی باعث میشه که من نخوام به مردم بگم که واعظ و یا کشیش هستم. چرا وقتی به مردم میگم واعظ هستم اینطور واکنش نشون میدن شاید این برمیگرده به دوره انبیا مردم ترس مقدسی از انبیا داشتند اگر مردم مانعی برای خدمت اونها میشدند انبیا میتونستند انواع داوری ها رو بر آنها بیارن این کاری بود که آموز در مورد کسانی که به او پیشنهاد کردند که برگرده انجام داد گذشته از اینکه داوری خدا یقینا میآمد پیام اصلی آموز متوجه گناه کسانی بود که به لحاظ روحانی برگزیده بودند خداوند عیسی هم در تعالیمش بر این تاکید کرده در باب نهم یوحنا عیسی میفرماید اگر کور بودید گناهی نمی داشتید اما الان برای گناهتون هیچ عذری ندارید چون شما مغرور هستید که میبینید عیسی سعی می کرد که به رهبران مذهبی دوران خودش بگه به لحاظ روحانی کور هستند اما اونها ناراحت میشدند و در پاسخ گفتند آیا میخواهی بگی ما کور هستیم؟ عیسی پاسخ داد: اگر کور میبودید هیچ گناهی نداشتید. ما خیلی نگران ملت‌های کافر هستیم. پس کسانی که واقعاً نمی‌دونن چی؟ آیا اونها توسط خدا داوری خواهند شد؟ کتاب مقدس میگه اگر چنین شخصی وجود داشته باشه، اگر کسی نوری نداشته باشه، اون وقت گناهی بر او نیست. چیزی که سبب گناه میشه نور هست. شما با نوری که دارید چیکار میکنید؟ بیشترین تاکید پیام آموس بر این هست. آموز موعظه میکنه مگر شما برای من مانند حبشی ها نیستید. و جواب البته بله است. از بین تمام ملت های روی زمین من فقط شما را برگزیدم. آموس اشاره میکنه که قوم اسرائیل اگرچه مانند یک قوم ممتاز روحانی رفتار نکردند اما قومی ممتاز هستند. پس داوری قوم اسرائیل سختتر از داوری ملت های کافر خواهد بود. و آموس این رو در دوباب نخست اعلام میکنه چون قوم اسرائیل به لحاظ روحانی قوم برگزیده بودند به طور خلاصه من اعتقاد دارم که پیام آموس چندین حقیقت مهم روحانی رو اعلام میکنه. اول اینکه داوری خواهد آمد چون قوم اسرائیل گناه کردند دومین بخش از پیام او اینه که اونها علی تمام امتیازات روحانی که داشتن گناه کردند و سومین بخش از پیام آموس همانند دیگر انبیا احیاء مجدد هست. در آن روز خیمه داوود را که افتاده است برپا خواهم نمود و شکاف‌هایش را مرمت خواهم کرد و خرابی‌هایش را برپا نموده آن را مثل ایام سلف بنا خواهم کرد تا ایشان بقیه ادوم و همه امت‌ها را که اسم من بر ایشان نهاده شده است به تصرف آورد. خداوند که این را به جامی آورد تکلم نموده است وقتی یک نبی برای پادشاهی شمال موعظه میکنه خیلی هیجانانگیزه، چون احیای مجدد هنوز اتفاق نیفتاده وقتی شما نبوتهایی درباره استقرار مجدد پادشاهی شمال رو می خونید میتونید ببینید که استقرار مجدد و بازگشت از اسارت بابل اتفاق افتاده و میتونید متقاعد بشید که این احیای نهایی هم انجام خواهد شد وقتی میشنوید که هوشع و آموس احیای مجدد رو موعظه کنند، این میتونه امید مبارکی رو در شما تقویت کنه که بازگشت سانویه مسیح انجام خواهد شد چرا دانشجویان نبوت و دانشجویان کتاب مقدس امروزه به خاورمیانه میانه علاقمند هستند. این به خاطر اسرائیل هست اگر بخواهید بدانید به لحاظ نبوتی چه چیزی پیش خواهد آمد به اسرائیل نگاه کنید پولس رسول و انبیاء عهد قدیم هم گفتند که خدا اسرائیل را دور نمیندازه ما بازگشت جغرافیایی قوم اسرائیل را دیده ایم که بخشی از این نبوت ها هست البته وقتی این انبیا از احیاء مجدد صحبت می کنند بازگشت روحانی اسرائیل به سوی خدا هم مورد نظرشان هست وقتی به زکریا برسیم می بینیم که او میگه گه یهوه سبایوت چنین میگوید. در آن روزها ده نفر از همه زبانهای امتها به دامن شخص یهودی چنگ زده متمسک خواهند شد و خواهند گفت همراه شما می آییم زیرا شنیده ایم که خدا با شماست. این اتفاق هنوز نیفتاده اما خواهد افتاد اگر میخواید بدونید که چه اتفاقی خواهد افتاد به اسرائیل نگاه کنید چون همه انبیایی که اسارت آشور و اسارت بابل رو پیشگویی کردند در بین تمام اون روزهای تاریک مجازات همگی این را هم موعظه کردند که خداوند اسرائیل رو بالاخره احیا خواهد کرد مهیج چیز در مورد پیام احیای مجدد این انبیا بخشی هست که هنوز اتفاق نیفتاده بازگشت روحانی اسرائیل به سوی خدا وقتی میبینید که قوم یهود مسیحیان ایماندار شده و به سوی خدا بازگشت می این بسیار هیجان انگیزه و معنیش اینه که خدا قوم اسرائیل رو به لحاظ روحانی احیا میکنه همونطور که به لحاظ جغرافیایی اونها رو مستقر کرده آیا شما به لحاظ روحانی به سوی خدا اومدید؟ مایلم بیشتر در مورد خدایی که شما رو دوست داره و علاقمند آینده شما صحبت کنم بنابراین از شما دعوت می کنم که ترتیبی بدید که در جلسه آینده دانشکده کوچک کتاب مقدس با ما همراه باشید. عزیزان چیزهای زیادی هست که باید از این انبیا یاد بگیریم. ما هم مانند آموز باید بفهمیم گاهی حقیقت کلام خدا رو به دیگران اعلام می کنیم و اونها ممکنه ما رو مسخره کنن. اما مانند آموز هم باید وفادار باشیم. حقیقت حیرت انگیز دیگه اینه که خدا نقشه حیرت انگیزی برای قوم خودش بنی اسرائیل داره و نقشه حیرت انگیزی برای من و شما داره. متشکرم که دانش متحدی متعهدی بودین. دعای ما اینه که خداوند این درس ها رو به کار بگیره تا شما رو در ایمانتون تقویت کنه تا برنامه بعدی در فیز و آرامش او بمانید.